و هشتاد سرانجام از خیشان من خواهش کرد او را با من تنها بگذارند تا با من بی پرده صحبت کند وقتی اتاق خلوت شد بانوی سالخورده خورده به کنار بسترم آمد و با زبان ملایمی گفت پسرم تا خونن سبب بیماری خود را از همه پنهان داشتی ولی اگر حقیقت را به من بگویی میتوانم توانم به تو یاری کنم تا از بستری بیماری برخیزی اگر هم نگویی من تشبه‌های بسیار دارم من توانم بفهمم که سبب بیماری تو چیست و به رازی که در دل داری پی خواهم برد من می‌دانم که تو به بی بیماری عشق گرفتار شده ای و به کسی دل باخده ای فقط به من بگو که مشوقه تو کیست که توانسته دل جوان اتنایی چون تو را برواید. نگران نباش من تمام سعی خود را به کار می‌برم تا راهی پیش پای تو بگذارم و به مراد دل خود برسی این بانوی پیر پس از بیانات خود مکسی کرد و منتظر من تا پاسخ مرا بشنود. چون من خاموش بودم دوباره به سخن آمد و گفت آیا سکوت تو بر اثر شرم و حیاست یا به من اعتماد نداری و یا آنکه تردید داری که آنچه میگویم توانایی انجامش را ندارم. من فقط آه عمیقی کشیدم و به او نگاه کردم. آنگاه بانوی جهان دیده به من گفت فرزندم. که بسیار جوانانی در سن و سال تو به دام عشق گرفتار بودند و من توانستم برای آنها راهیابی کنم و از گرفتاری رهایی یابند بعد از که این بانوی خردمند از هر دری برایم سخن گفت وقت رفته احساس کردم با او راحتم و همین که به نیت نیک او مطمئن شدم آن چرا که در دل داشتم برایش بیان کردم و آن کسی که آرامش و قرارم را ربوده بود معرفی کردم و گفتم در کجا او را دیدم و خانه اش کجاست و پدرش کیست؟ گفتم اگر شما می توانید تتیبی دهید که عشق سوزان مرا به آگاهی او برسانید و به او بگویید که می به عشق و دوستی من متکی باشد و بتوانم با دیدن چهره زیبای او شادی و شور زندگی را از سرگیرم گیرم سپاسگزار شما خواهم بود. بانوی جهان دیده گفت ای فرزند همانطور که خودت گفتی پدر این دختر یکی از پیشوایان مذهبی که مورد احترام مردم است باشد و این دختر زیباترین دختران شهر بغداد است من همو را شناسم و به خانه آنها رفت و آمد میکنم مشکل بزرگ در اینجاست که این دختر خانم زیبا بسیار به خود مقرور است و به زیبایی خود می نازد و دسترسی به او کار دشواری است از این مزشته قضات و پیشوایان دینی نسبت به زن و فرزندان خود سختگیر هستند و اجازه دهند که آنها به مردها نگاه کنند و معتقدند که باید دائما در خانه بمانند و کسی رنگ آنها را نبیند و اگر هم ضرورتی پیش آید که ناچار به خروج از خانه شوند فقط باید چشمانشان متوجه راه و کوچه و خیامان باشد و به هیچ مردی نگاه نکنند این طرز تربیت سبب شده است که خود دختران این اشخاص هم به این شیب عادت کنند و از مردها بپرهیزند اگر پدر این دختر پیشوای مذهبی نبود چاره کار به مراتب آسانتر بود. ولی با وجود این ناامید نیستم و عقلم را به کار میگیرم تا راه حلی پیدا کنم. هنگامی که بانوی جهان مرا ترک کرد، سخنان او را دوباره درباره, درباره های موجود بررسی کردم و این دشواریها سبب شد که بر شدت بیماری من افزوده شود. فردای آن روز وقتی بانوی پیر به خانه من آمد، از قیافه درهم او فهمیدم که خبر خوشی از ملاقات با دختر قاضی برایم ندارد. بعد از لحظه‌ای بانی پیر گفت فرزندم همانطور که گفته بودم این دختر از رنج جوانهایی که اسیر عشق او میشوند لذت می‌برد هنگامی که برای او گفتم که تو او را دیده ای و صد دل عاشق او شده ای بسیار شاد شد ولی همین که به او پیشنهاد سردم بهتر است با این جوان دیدار کنی ناراحت شد و با گستاخی پاسخ داد اگر بخواهی چنین سخنانی بگویی دیگر حق نداری اینجا بیایی پیرزن ادامه داد فرزندم ما همه این باید شب کنی و از میدان در نروی هر طوری باشد من تصیب کار را خواهم داد این دختر بسیار مغرور است اما با صبر و تدبیر میتوان بر هر چیز دست یافت وقتی که پیرزن رفت من خود را معیوس و ناراحت حس کردم و آزوردگی خاطرم به حد رسید که بدتر از گذشته در بستر بیماری افتادم و پزشکان اعلام خطر کردند در این فاصله پیرزن چند بار با دختر تماس گرفته بود. اما به نتیجه نرسیدی بود من همچنان در تاب به تاب عشق می‌سوختم و چاره‌ای جز تحمل نداشتم تا آنکه یک بار دیگر پیرزن با آمدن خود به نزد من جان تازه‌ای در کال بودم دمید و به من نوید زندگی بخشید پیرزن در گوش من گفت فرزندم این بار خبرهای خوش برایت آوردم و تا باید مژدگانی از زندگی به من بدهی با شنیدن این سخن حس کردم قدرت نشستن در بستر را به دست آوردم به او گفتم هرچه بخواهی به تو می دهم بگو ببینم خبر خوش چیست پیرزن گفت فزندم دیگر رنجوری و نتوانی از تو دور می شود و به خواست پروردگار تندرستی کامل خود را باز خواهی یافت دیروز که دوشنبه بود به دیدار دختر مورد علاقه ای تو رفتم و او را شادمان یافتم من خود را بسیار افساده و اندوکی نشان دادم و مرتبا آه می کشیدم و سعی می کردم قطره قطر هم بریزم نخک که وضع رو چنین دید گفت مادر چه پیش آمدی رخ داده که تو را این حد ناراحت ساخته من پاسخ دادم که همان جوانی را که درباره اش با شما صحبت کردم از عشق شما بیمار شده در حالت است و پزشکان از درمان او آجز ماندهاند و اند که پایان زندگیاش نزدیک است دیروز هم با شما صحبت کردم درخواست جوان را رد کردید و شما مسئول مرگ او خواهید بود و این جوان ناکام جان خود را فدای شما خواهد کرد با این ترتیب زمه بزرگی به او کرده اید بعد از سخنان من دختر گفت مادر من چه ظلمی به این جوان کردم از آگاهی بر احوال او ناراحت شدم من چگونه می توانم به او کمکی بکنم و از مرگ او جلوگیری کنم به او گفتم شما فقط اجازه دهید که این جوان مانند دفعه اول که شما را دیده اینجا بیاید و روی سکون مقابل خانه شما بنشیند. و شما هم پنجره اتاق بالا را باز کنید که او یک بار دیگر صورت زیبای شما را ببیند و از این بیماری مخلک‌دهای یابد. یابد دفعه گذشته یعنی چند روز پیش وقتی به او گفتند که شما مایل به دیدار او بیماری او شدت پیدا کرد و اینک امیدی به زنده ماندن او نیست دختر ناراحت شد و از من پرسید آیا اطمینان دارید که بیماری او به خاطر من است و اگر به عشق من و دیدار من امیدوار گردد از مرگ رهایی خواهد یافت. پصخ دادم بیماری او با دیدار شما برطرف می‌گردد و تندرستی خود را باز خواهد یافت. دختر گفت پس او را به دیدن من امیدوار کن و بگو چون پدرم روز جمعه برای نماز جماعت به مسجد بزرگ شهر می رود هنگام ظهر به اینجا بیاید و همانجا بنشیند و من هم پنجره را باز می کنم تا مرا ببیند بعد من در خانه را به روی او می‌گشایم تا با من صحبت کند. اما در همین حد نه بیشتر مگر آنکه دهد با من پیوند زن و خواهد بست این جوان تا قبل از آمدن پدرم از مسجد می تواند نزد من بماند و بعد هم برود امروز سه‌شنبه است و جوان می تواند روز جمعه هنگام ظهر به اینجا بیاید وقتی پیرزن این سخنان را گفت از کیف خود مشکی تزکیه طلا درآوردم و در دست او گذاشتم و وقتی ها از خانه بیرون رفت حس کردم حالم خوب شده و سلامت هستم روز جمعه اول صبح پیرزن به خانه آمد و من در حال لباس پوشیدن بودم و در همان وقت پیرزن گفت حتما قبل از دیدار با دختر گرما ببرو گفتم حرفی ندارم ولی چنانچه به گرما بروم در سر ظهر نمیتوانم به دیدن دختر نایل شوم به این دلیل یکی از غلامان خود را فرستادم تا هرچه زودتر دلاکی را برای این منظور به خانه آورد بعد از مدتی دلوک سیاه را که همین پست فطرت است به خانه آورد و این آدم بیوژدان پس از سلام علیک به من گفت به نظر میلسد بیمار بوده ای من اکنون تیغ سلمانی خود را آورده ام و نمیدانم میخواهید خون بگیرم و یا سر و صورت شما را بتراشم در پاسخ به او گفتم تازه از بستر بیماری بیرون آمدم و فقط میخواهم صورتم را بتراشم و فرصت هم است و بسیار عجله دارم به جای سخنان بیهوده زودتر شروع کن زیرا دقیقاً باید سر سرجرد در محل قرارم حاضر باشم آنگاه تیغ خود را از کیف چرمی سلمانی خود بیرون آورد و مدتی آن را به تکه چرم مخصوصی تیز کرد و به جای آنکه هم را با آب مطوب کند دستگاه رمل و استرلاب را از کیف بیرون آورد آنگاه به داخل حیاط رفت و نگاهی به خورشید کرد تا ببینند در چه ارتفاعی از آسمان است و بعد هم با قدم های سنگین و شمرده به داخل اتاق برگشت سپس رملا بر روی صفحه استولاب که بردهای دوازده سال را نشان می‌داد قرار داد و گفت در حال حاضر چون قمر در برج اقرب است سلمانی کردن و تراشیدن موی سر صورت کار نیکو و پسندیده نخواهد بود زیرا امروز روز جمعه و همزمان با هیچده همه ماه سفر است و این ماه در برج اقرب است و منتها به فرجام نیکی نخواهد شد یعنی اگر امروز در صورت خود را سلمانی کنید برای شما خطر بزرگی پیش میآورد و ممکن است به قیمت جان شما تمام شود اگر هم جان خود را از دست ندهید تمام عمر باقی مانده را به ناراحتی و بیماری خواهید گذراند شما از پیشگیری و راه نمایی های من باید خود را مرهون دانش من بدانید شما حالت من عاشق بیقرار را حدس بزنید که گرفتار چنان آدم پر حرف و گویی شده بودم و عجله داشتم هر چه زودتر خود را آرایش کرده و به نزد محبوبم بروم به او گفتم من عجله دارم و تو را برای سلمانی موهای سر و صورتم به اینجا آوردم نه اون که برای من پیشگویی کنی و فال بگیری از تو میخواهم هرچه چه زودتر موهای سر و صورتم را بتراشی یا آنکه بیدرنگ از اینجا بروی تا من دلاک دیگری بیاورم این مرد در پاسخ اعتراض من در کمال خونسردی و بیتفاوتی سخنی گفت که قاسه را لبیست کرد. وی گفت به چه دلیل با این خشونت با من صحبت می کنید؟ آیا نمی که در سراسر سر شهر هیچ سلمانی چون من یافت نخواهید کرد؟ من نه تنها بهترین سلمانی شهر هستم بلکه بهترین دانشمند رشته فیزیک و آگاهترین شیمیدان شهر و ستاره شناس و معلم دستور زبان عربی و سخنران مشهور و استاد علم منطق و فلسفه و ریاضیدان درجه اول ویژه در علم هندسه و حساب و کلیه رشته های جبر و مقابله و استاد رشته تاریخ کلیه ملل عالم هستم و در رشته فلسفه هم فیلسوف توانایی به شما می آیم. از هر انگشتم خنری می بارد شاعری توانا و معماری بیمانندم و خلاصه بگویم خداوند همه استعدادی به من مرحمت کرده است آنگاه گفتم مرحوم پدرتان کاملا آگاه به احوال من بود و نسبت من علاقه بسیار داشت و در کلیه مهمانی ها مرا بزرگترین مد روزگار معرفی می‌کرد. من به نشانه قدرشناسی از مهمانی های پدرتان حاضرم شما را زیر مراقبت و حمایت خود قرار دهم تا چشم زخمی به شما وارد نشود وقتی سخنان این دیوانه را شنیدم با وجود آن همه خشم و اصابانیت از حرف‌هایش خنده گرفت و به او گفتم به جای این همه یاوه سرایی اجل کن و زودتر موهای سر و صورتم را سلمانی کن مرد سلمانی گفت مرا را خطاب می کنید این اهانت بزرگی است زیرا تمام اهالی شهر مرا مرد کمهرف لقب داده اند ولی من شش برادر دارم که آنها پرگو و یاوه یاوهسورا هستند اولی باک بوک و دومی بربره و سومی بکبک بک و چهارمی بربرک و پنجمی نسکر و چکاوک نام دارد این شش نفر به پرگویی معروفند و من به متانت و آرامش و کمگویی شهره شهرم در این هنگام مرد جوان رو به تمام میهمان ها کرد و گفت شما یک رست خودتان را جای من بگذارید و ببینید در مقابل چنین آدم پررو رو من باید چه می از ناراحتی نزدیک بود خونم. کنم به یکی از غلامانم گفتم سفکی طلا به این آدم پرگو بده و او را نوانه کن که دست از سر من بردارد اصلا امروز سلمانی نمیخواهم زود باش او را بیرون کن این مرد به جای رفتن گفت منظورتان از این سخن چیست من که دنبال شما نیومدم شما دنبال من فرستادید. به مقدسات سوکر میخورم تا شما را سلمانی نکنم از این خانه بیرون نمیروم اگر شما ارزش کار مرا نمیدانید ایراد به شما وارد است پدر مرحومتان مرا بهتر میشناخت و احترام می کرد. و هر بار که برای سلمانی کردن نزد او می آمدم، به من می تو چه مرد دانشمند آگاهی هستی و تمام دنیا باید قدر تو را بشناسد و اصرار می کرد بیشتر سخن بگویم تا بیشتر بهره من شود او می تو بزرگترین دانشمندان روی زمینی و من هم به او می شنونده خوب گوینده را به سخن میآورد و علاقه شما مرا سر می آورد در یکی از این دفعات مرحوم پدرتان از خوشحالی بر اثر سخنان من دستور داد تا خدمتکارش 300 سکه طلا به من بدهد و پدرتان هم جُبه‌ی 1 گرم بهای خود را به من هدیه کرد من هم از او سپاسگزاری کردم سخنان پوتوبی معنی این آدم در اینجا خاطره نیافت و از خانی خود را نیم ساعت دیگر ادامه داد دیگر طاقتم را از دست داده بودم فرصت کم بود و باید هرچه زودتر خود را به خانه دختر میرساندم دلم سراسر سر تشفیش بود و سخنان این مرد هم پایان نداشت. بالاخره به او گفتم در دنیا کسی را نمی شناسم که به اندازه ای تو از درد دادن دیگران خوشنود شود و شنونده را مثل من دیوانه سازد. نخوص کردم شاید با ملایمت و نرمی از دست او رهایی یابم. آن وقت به سلمانی گفتم پس عجله کن تا من همانطور که گفتم به موقع سر وعدگاه حاضر شوم. چون امروز مهمترین کارها را باید در هنگام ظهر انجام دهم آنگاه در پاسخ من گفت عجله شما موجب ناراحتی شما می شود من با پدر و پدر هرگز ناراحتی نداشتم و آنها شتاب زدگی نشان نمی دادند. آنها برای حل مشکلاتشان از راهنمایی های من استفاده می کردند. اینک شما هم هر امری دارید به من بفرمایید آن سخنش را قطع کردم و فریاد زدم سرم از سخنان پوچ تو گیج شده یا مرا سلمانی کن یا مرا رها کن و از این خانه دور شو. وقتی از هم را دید دست به شد و هنوز مقدار کمی از موهایم را اصلاح نکرده بود که دست نگه داشت و گفت شما امروز خیلی عجله دارید سعی کنید که به این محل نروید و با من هم بهتر رفتار کنید لاغرض رعایت دانش و صحو سنم را بنمایید فریاد زدم به جای حرف زدن ریشم را به و زودتر مرا خلاص کن که از پر حرفی تو خفه شدم من حاضرم هرچه چه بخواهی به تو بدهم و مرا هرچه چه زودتر از زیر تیغ سلمانی خود خلاص کنی در پاسخ درخواست من مرد سلمانی گفت کسانی که در کار خود شتاب دهند عاقبت پشیمانی به بار به علاوه تو چه کار داری که آنقدر برایت اهمیت دارد تازه تا هنگام نماز ظهر هم وقت کافی داری که به کار خود برسی به او گفتم همه اینها صحیح مردان خوشغن باید جلوتر از ساعت ودی خود در ودگاه با حاضر باشند. هرقدر من شاب زرییکی و تشویش نشان می دادم او بی تفاوتی یا آرامش نشان میداد. تا آنجا که تیغ سلمانی را کناری گذاشت و دوباره سراغ رم استرلاب رفت بعد از چند لحظه استرلاب را زمین گذاشت و تیغ خود را به دست گرفت و گفت من نمی نمیدانم که صورت شما را به طور کامل تمیز کنم سرنوشت شما این اجازه را نمی دهد. آن وقت نگاهی به استرلاب کرد و لحظهی به حیات رفت و بازگشت و گفت شما باید اقلا سه ساعت در رفتن خود تفریح کنید تا ماه از مدار برج اقرب عبور کند وگرنه خطر بزرگی به سراغ شما می آید قوانین ستاره شناسی خطا نمی کنند در این موقع فریاد کشیدم خدایا به برست و مرا از دست این دیوان نجات بده دیگر صبر و بردباری خود را از دست دادم لحظه ممکن است از شدت ناراحتی سکوت کنم اگر خفه نشوی با این دست هایم خفه از خواهم کرد امروز روز پایان زندگی توست و من هم کسی هستم که باید آن را پایان دهم قانون ستاره شناسی چنین حکم می‌کند و دروغ هم نمی‌گوید مردک پس از آنکه ناراحتی مرا دید با یک دست تیغ سلمانی و دست دیگر به اسطرلاب گفت آخر ناراحت نشوید فقط بگویید با چه کسی ملاقات داری. برای آن که او را ساکت کرده باشم گفتم چون بستر بیماری را ترک کرده دوستان جشتی گرفتند و من باید هنگام زهر در آنجا باشم همین که سخنان را گفتم مرد سلمانی گفت آه خدای من نزدیک بود به کلی فراموش کنم که فردا شب پنج ششتر از دوستانم به خانه من میآیند و باید خوردنی و نوشیدنی برای شام آنها تهیه کنم و هنوز هیچ کاری نکرده ام من به او گفتم هیچ نگران نباش من شرابهای خوبی در سرداب خودم نگه می‌دارم و خاربار و فراوان هم دارم هرچه بخواهی به تو می‌دهم که زودتر سر و صورتم را اصلاح کنی و دنبال کار خود بروی مرحوم پدرم به تو پول داد که برایش صحبت کنی و من به تو همه چیز می‌دهم که ساکت باشی و کار خود را به پایان برسانی وقتی این سخنان را شنید گفت خواهش دارم آن چراکی می‌خواهید به من بدهید به من نشان دهید تا ببینم که برای میهمانهایم کافی است یا نه. به او گفتم مواد غذایی که به تو می دهم عبارتند از یک بره، شش عدد خروس اخته، دوازده عدد مرغ، مقداری برنج و چیزهای دیگر که بتوانی چندین بار از آنها استفاده کنی، به اضافه یک صندوق شراب خانگی. فوراً از غلامان را صدا زدم و گفتم همه اینها را بیاور اینجا. غلام فوراً همه را آماده کرد و در اتاق روی زمین گذاشت. مرد سلمانی در آن لحظه یکایک یک را وارسی کرد که نیم ساعت طول کشید و بعد از آن گفت من میوه و چاشنی و گوشت هم لازم دارم آنها را هم در اختیارش گذاشتم تا زودتر خلاص شوم اما به جایی شتاب کردن این مرد خودپسند نادان با آرامش تیغ سلمانی را به دست گرفت و چند دحصه به تراشیدن موهای صورتم مشغول شد و گفت نمیدانستم شما هم آنقدر سخاوت دارید درست مانند مرحوم پدرتان دست و باز هستید خابابتنددی شما را هرگز فراموش نخواهم کرد. هنگام صحبت دست از کار کشیده بود و می دوستان من همیشه در زندگی خوشنودند و با مختصر چیزی شاد میشوند آن. آنها عبارتند از کارگر گرمابه که مشتری ها را مشتمال میدهد و دیگری دورگردی است که باغلای پخته می فروشد. دیگری که لوبیا فروش است و یکی دیگر هم سبزی فروش است و دیگری که شپور است و کوچه ها را آب می‌کند. و گرد بلند نشود و آخرین آنها هم یکی از نگهبانان خلیفه است که اینها دور یکدیگر جمع میشوند و با مختصر آزوق شاد و میشوند و شادی آنها بیشتر از شادی خلیفه در دربار سلطنتی اوست و با همین اندک خشنود هستند. سپس هر کدام ترانه می‌خوانند میخوانند و به رقص کردن میپردازند. من همینک ترانه را که دوستم میخواند برایتان میخوانم و با همان آهنگ میرقصم. بعد شروع کرد درفریدن و آواز خواندن من برای دومین بار شکیبایی خود را از دست دادم و فریاد کشیدم و گفتم به خاطر خدا دست از این مسخره بازی بردار وقت می‌گذرد و من نمی‌توانم سر وقت در محل وعده حاضر شوم بعد از آن سلمانی گفت من هم دوستانم که مردمی درستکارند به خانه خودم دعوت می‌کنم و از شما هم دعوت می‌کنم که با همه دوستانتان به آنجا بیایید به شما خیلی خوش خواهد گذشت همش خنده و شادی و آواز و رقص است با وجودی که ناراحتی من از رفتار این مرد سلمانی از حد گذشته بود از خوشخیالی و نادانی او خندهام گرفت به او گفتم اگر امروز گرفتار نبودم حتما با کمال میل به خانه شما می آمدم روز دیگری که فرصت بیشتری دارم خواهم آمد آنگاه مرد سلمانی گفت درخواست مرا بپذیرید و به منزل ما بیایید تا ببینید چقدر در آنجا به ما خوش میگذرد اگر یک بار به خانه من بیایید دیگر دوستان خود را کنار میگذارید؟ به او گفتم به هر حال امروز نمیتوانم مهمان شما باشم در مقابل اصرار او حس کردم از مدارا کردن با او هم نتیجه ای آیدم نگردیده مرد سلمانی در پاسخ من که دعوت او را به خانه عشاق کرده بودم گفت پس در این صورت اجازه فرمایید من همراه شما به خانه دوستانتان بیایم من خوراکی هایی را که شما به من داده اید اول به خانه ام میبرم تا اگر دوستانم خوششان آمد بخورند ولی من خودم فورا مراجعت خواهم کرد من آدم بینزاکتی نیستم و نخواهم گذاشت شما از همنشینی من در این مهمانی محروم شوید با شنیدن سخنان مرد سلمانی فریاد زدم خدایا مثل اینکه امروز از دست این آدم پر حرف خلاصی نخواهم داشت به خاطر خدا به من رحم کن و مرا به حال خود بگذار و تو با دوستان خودت بخورید و خوش باشید و به بهروزان من هم نزد دوستانم بروم از این گذشته خانهای که من به آنجا میروم جایی نیست که تو بیایی من باید به تنهایی آنجا بروم میفهمی چه میگویم به تنهایی فقط من میتوانم به آنجا بروم در این هنگام مرد سلمانی گفت جدی نمیگویی اگر تو برای میهمانی به خانه دوستانت میروی چه اشکالی دارد من هم همراه تو بیایم و خیلی هم از دیدن من شاد خواهند شد می‌دانم چگونه آنها را سرگرم کنم که راضی باشند. به هر حال من با تو خواهم آمد. وقتی دیدم سخنانم در این مرد نادان و زبان زبان‌نفخ کمترین تأثیری ندارد، خود را به ظاهر موافق نشان دادم تا به نحوی از چنگ او فرار کنم. به او گفتم تو با خدمتکار من مواد خراجی و بره و شراب و سایر چیزها را ببرید تا بعد من به شما برسم. ما این موافق موافقت کرد و به اتفاق خدمتکار از اتاق بیرون رفت. من هم لباس خود را به سرعت پوشیدم و راه منزل دختر را پیش گرفتم. وقتی به مقابل خانه ی دختر رسیدم، اطراف خود را نگاه کردم تا مطمئن شوم کسی مرا نمیبیند. در همین موقع دیدم که مرد سلمانی در پیچ کوچه خود را پنهان کرد. فهمیدم مرا تعقیب کرده است. در منزل امام جماعت نیمه گشوده بود. هم... همین که قدم به درون هشتی گذاشتم، پیرزنی را در انتظار خود دیدم، به من خوش آمد گفت و مرا به اتاق دختری که عاشق او بودم راهنمایی کرد دختر مرا دید و همین که گفتگوی خود را آغاز کردیم صدایی از کوچه آمد و چون نگاه کردیم امام جماعت را دیدم که به اتفاق چند نفر به سوی خانه میآید. در این موقع چشمم به مرد سلمانی افتاد که در همان جایی که روز اول من نشسته بودم او نشسته بود دو چیز مرا ناراحت کرد اول آمدن امام جماعت پدر دختر البته بعد از برگزاری نماز ظهر بود و به او به هنگام معمول آمده بود منجه من دیر آمده بودم که آن هم به واسطه پرچانگی این سلمانی پست فطرت بود دوم حضور غیر منتظره مرد سلمانی که سخت اوقات مرا ترخ کرد و مرتکب بی شدیدی شده بود وقتی دختر محبان و زیبا حالت ناراحت مرا دید گفت من فکر همه جرا کردم اول پدرم به ندرت به این اتاق میآید چون او مستقیما به اندرون می‌روزد ثانیان هم که بیاید من راه فرار مطمئن برای تو پیش بینی کرده ام هم. همین که امام جماعت به وارد شد، یکی از خدمتکاران را به زیر تازیان انداخت و فریاد و بانگ بلند او سبب شد که مرد سلمانی تصور کند مرا کتک می‌زنند ناگهان شروع به فریاد کشیدن کرد و لباس خود را پاره پاره کرد و بر سرش گفت و همسایگان را به یاری خود فرا خاند. همه همسایگان از خانه ها بیرون میکتن و از او پرسیدند چه شده است مرد سرمانی فقط فریاد میکرد آنها دارند سرور مرا را میکشند سرور مهربان عزیزم را آنگاه باش خود را به خانه من که در همان نزدیکی ها بود رسانید و غلام های مرا بیاری تلبید و آنها همگی به دنبال او به سوی خانه امام جماعت هجوم آوردند و با چوب حمله بر شدند غلام امام که وحشت زده شده بود به امام خبر داد که جمعیت به خانه او روی آورده اند خود امام جماعت که مرد روحانی بود در خانه را باز کرد و گفت چه خبر است مرد سلمانی گفت تو ای امام جماعت از زیش درازت خجالت نمیکشی؟ کشی عرباب و سرور مرا به چوب بسته ای صدای فریاد او را شنیدم که غلامان تو او را توب میزدند. امام پاسخ داد من ارباب تو را نمی شناسم و اگر به خانه من آمده چگونه آمده که من خبر ندارم خانه من در اختیار شما. و فریاد نزنید و آبروریزی نکنید من به چه گناهی کسی را که نمی‌شناسم می توانم مجازات کنم تمام خانه ام را جستجو کنید اگر او در این خانه هست او را با خود ببرید من مطمئنم کسی در این خانه نیست فلمانی در قصخ امام جماعت گفت من مطمئنم که ارباب من عاشق دختر توست و امروز هنگام نماز ظهر با او قرار دیدار داشته و به این خانه آمده من خودم شاهد آمدن او به این خانه بوده هم. اما تا این لحظه از اینجا بیرون نیامده و تو زودتر از وقت همیشگی به خانه برگشت ای و او را با دختر خود دیده ای و او را به چوب بسته ای تو از این یریشه درازت شرم نمی کنی که ارباب مرا به چوب بندی؟ تو این مرد روحانی نمای برکنز، تو مثل شیطانی که چنین رفتار غیر انسانی می کنی. من موضوع را به آگاهی خلیفه خواهم رساند تا اشخاصی مثل تو را برای پیشوایی دینی مردم انتخاب نکند. امام گفت؟ به جای این سخنان بی نتیجه بیایید داخل خانه مرا جستجو کنید کسی را در اینجا پنهان نکردم آنگاه تمام خدمتکاران و غلامان من داخل خانه امام شدند من که از بالا خانه می دیدم چه بقایی رخ می دهد با حالت نگران دنبال راه فراری بودم یک صندوق خالی بزرگی در آنجا بود و وارد آن شدم و درش را بستم مرد سلمانی پس از جستجوی کامل خانه به اتاقی که من در آن بودم وارد شد. و در صندوق را گشود وقتی مرا دید درش شد بست و صندوق را روی سر خود گذاشت و حرکت کرد و چون با نگرانی و شتاب در حرکت بود در بالای پلخان در صندوق گشوده شد و من که میگیدم ممکن است در میان حیاهو و شورش مردم نمایان شوم و آبرویم ریخته شود ناچار از صندوق بیرون پریدم و چون این مرز سلمانی با های خود صحنه پدید آورده بود که آبروی من و دختر امام جماعت را در برابر همسایگان و مردم محل مورد خطر قرار داده بود، ماشیتابزدی خود را به کوچه ای کردم که در نتیجه پایم ناقص کردید. اول که گرم بودم، به خاطر حفظ آبرویم با حالت دو فرار کردم و مشتی سکه ی بین مردم میختم تا خود را از آن صحنه خطرناک خلاص کنم. همین که مردم حواسشان به جمع کردن سکه ها بود، من هم خود را از آن محل دور کردم. هنوز به حالت عادی خودم برنگشته بودم. که صدایی از پشت مرا فرا خوند. تو نگاه کردم مرد سلمانی را دیدم که می گفت چرا آنقدر با شتاب می اگر بدانی چقدر ناراحت شدم وقتی صدای فریادت را شنیدم که بر سر ضربه های تازیانه امام جماعت تا بیرون خانه می آمد. این مرد ظالم تو را که این همه به من و رفقای من محبت و سخاوت کرده بودی این همه آزار داد اگر تو به تقاضای من توجه کرده بودی و مرا با خود به میهمانی برده بودی این ناراحتی پیش نمی آمد. حالا ببین چه بلایی به دست خود به سر خود آورده ای و اگر من به تو به اینجا نیامده بودم چه به سر تو می آمد سفر من کجا میروی؟ سب کن تا من هم بیایم من هم چنان...